حکایت پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار. نه طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و قرامت کشیدی، ترک تصابی نگفتی و گفتی کوتح نکنم زدامنت دست خود بزنی به تیغ تیسم. بعد از تو ملاز و ملجعی نیست. هم در تو گریز ار گریزم باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیص غالب آمد زمانی به فکرت فرو رفت و گفت هر کجا سلطان عشق آمد نماند قوت تقوا را محل پاک دامن چون زید بیچارهی او تا گریبان در وحش.